ما حامیان دین اسلامیم ما دشمن احزاب شیطانیم ما عاشق دین رسول الله در راه او ما در راه او ما جان فدایانی ما دین اسلامی ما دشمن احزاب شیطانیم ما عاشق دین رسول الله در راه ما جن فدا در راهی ما جن فدا محمد افتخار ماست راه محمد اقتدار ماست با کافران ارلاه زد در جنیم الله قیوم در کنار ماست الله قیوم در کنار ماست ما حمیا دین اسلامی ما دشمن احزاب شیطانی ما عاشق دین رسول اللہ در راه او جان فدایانی در راه احمد نبی خاتم رحمتان اقوال روشن روشنگر انسان در آسمان انبیاء تو بنده او همچون ماه تبار تو او همچون ماه تبار ما دین اسلامی ما دشمن اخزاب شکنیم ما عاشق دین رسول الله در راه او ماجان جان فدایانی در راه او ما جان فدایانی او مظهر توحید دو و هم ایمان او حیدمی در کال بوده بیل جان مدهو تورات می کند و هم تورا, تورا تو هم انجیل و هم قرآن ما ها میان دین اسلامی ما دشمن احزاب شیطانی، ما عاشق دین رسول الله در راه و ماجان در راهی و ماجمع دینش نماده عزت و غیرت اوناجی فردای این امت. کس <سرح> راه و سر دائمان لرزان اومن به ایمان و هر عیبت اومن به ایمان و هر عیبت ما حابیان دین اسلامی ما دوشمن احزاب شیطانی ما عاشق دین رسول الله در راه اوماجن یانی در راه اوماجن یانی جانم, جانم فدای دین احمد باد خونم روان با عشق باد گر كافران توهین روا دارن الله بکن بنیاد شان برباد الله بکن بنیاد شان برباد ماها میان دین اسلامی ما دشمن احزاب شیطانیم ما عاشق دین رسول الله در راه ما جان فدایانی در, راهی فدا یانی. در راهی فدا یانی. او بنده محبوب رحمان است بر جن و انس احمد چو سلطان است گر کافری این را کند حجوئی دشمن اس بر ماه تابان است بر ماه تابان است مآها میان دین اسلامی ما دشمن احزاب شیطانی ما عاشق دین رسول الله در راه او ما فدایانی در راه او ما فدایانی در راه او ما جن در او ما جن فدایانی